صفحه 583 من همراه کنیزک تا دروازه شهر آمدم و در آنجا با مادر شاهزاده که با گروهی بسیار می‌خواستند شاهزاده را به خاک سپارند روبرو شدیم آنگاه کنیزک به مادر شاهزاده گفت اجازه فرمایید پیکر دو شده راستین پدر. که در زمان زندگی به منظره یک روح در دو پیکر بودند اینک در یک آرامگاه در کنار هم به آرامش خود ادامه دهند مادر داپیده هم آنن موافقت کرد و پیکر شاهزاده را که اهالی آن را مشایعت می کردند در جوار مقبره شمس و نهار دفن کردند. از آن پس این آرامگاه محل زیارت گردید و هر سال گروه بیشماری از آنجا دیدن می در این هنگام که سهرگاه نزدیک می شد شهرزاد گفت ای شهریار این بود داستان عشق شمس و نهار و شاهزاده ایرانی و اینک داستان زیباتری برایتان تعریف خواهم کرد. سرگذشت عشق قمرال قمرالزمان و شاهزاده خانم بدورا. در فاصله 20 روز دریانوردی از سواحل آبهای ایران در قلمرو اقیانوس هند، جزایری قرار گرفته که آن جزایر را فرزندان خالدان مینامیدند که جمعاً به چهار ایالت بزرگ تقسیم می‌گردید. و کدام از آنها بسیار آباد و پرجمعیت بود و قلمروی پادشاهی سلطان توانایی را تشکیل می داد که او را شاه زمان می این پادشاه مقتدر دارای چهار همسر عقدی و تعداد شست زن سیغه بود. شاه زمان که خود را خوشبختن شاهان جهان به شمار می آورد در کمال آسایش بر کشور پرجمعیتی حکومت می کرد. او فقط از یک جهت ناراحتی داشت و آن هم نداشتن فرزند بود. که پس از مرگش تخت و تاج او بدون وارث میماند شاهزمان نداشتن فرزند را سانیان دراز از دیگران پنهان داشته بود تا عاقبت از این پرده پوشی به تنگ آمد و روز این راز را برای نخست وزیر خود که مرد آقیری بود فاش ساخت و از او چار جویی کرد وزیر با تدبیر گفت پادشاه ها آنچه به نظر میرسد آن است که هیچ کدام از همسران شما استداد باردار شدن را ندارند و من تا آنجا که تجربه و علم نشان میدهد راه به نظرم نمی رسد و در این صورت باید به نیروی آسمانی و خدایی روی آورد و شما پرکیزگاران و ریاضکشان را دعوت کنید و آنها را مورد مهمانی و پذیرایی قرار دهید و از آنها بخواهید که با دلهای پاکی خود دعا کنند و از خداوند بخواهند که خواسته پادشاه را عملی سازد. شاید دعای خیر آنها مورد پذیرش خداوند قرار گیرد. پادشاه این نظر را پذیرفت و به همین ترتیب هم عمل کرد و بعد از نه ماه خداوند پسر زیبارویی به او عنایت کرد که از فتح زیبایی او را قمرال زمان یعنی ماه روزگار نامید. هفت شبانه روز جشم تولد گرفتند و شهر را چراغانی کردند و نیازمندان را غذا دادند و پذیرایی کردند و شور و شادی در همه جا دیده می شود. به این نوزاد از نخستین روز توجه کردند و دایهٔ مخصوص و مربی دانا و آگاهی برایش گماشتند و به آموزش و پرورش او پرداختند و بهترین آموزگاران و دبیران را مأمور تربیت شاهزاده کردند و رفته رفته او را با کلیه دانشها و هنرهای روز آشنا ساختند از لحاظ ورزش و تربیت بدنی و پرورش مبانی و اصول اخلاقی و ادب تعلیمات کافی به او داده شد به طوری که سلامت جوانان همسن سال خود گردید و آنچرا که یک شاهزاده تمام عیار باید بداند، به او آموختند. این شاهزاده به قدری برازنده و زیبا و آگاه و توانا بود که هر کس او را میدید شیفته جمال زیبا و کمانات انسانی او می گردید. به خصوص پدرش که او را چون جان شیرین دوست داشت. هنگامی که شاهزاده به سن پانزده سالگی رسید، پادشاه که او را بسیار دوست داشت، به این فکر افتاد که تخت و تاج شاهی را به فرزند بسپارد. و خودش به استراحت بفردازد و این فکر را با نخست وزیر دانایی خود در میان گذاشت و گفت من به سن پیری رسیده و میخواهم کنارگیری کنم و بقیه سالهای زندگی را استراحت کنم و از طرز حکومت فرزندم لذت ببرم نخست وزیر که مرد با تجربه و جهان ای بود به پادشاه پاسخ داد که با توجه به سن و سال شاهزاده او هنوز بیتجربه است و شایسته نیست که تمام بار مسئولیت و اداره امور کشور را یک جا و یک باره به عهده او گذاشته شود بلکه به نظر نظر میرسد که این مسئولیت مطور تدریجی به او داده شود به این ترتیب که شاهزاده را در هیئت عالی مشاورین سلطنتی شرکت دهیم تا تدریجا هنر حکومت و کشورداری را بیاموزد و سپس با گزیدن همسری برای او حس مسئولیت زندگی خانوادگی را در او تقویت نماییم و بعد از آنکه او را از هر جهت شایسته و آگاه یافتیم آنگاه بار مسئولیت حکومت را به او واگذار کنید. شاه فکر نخست پذی را پسندید و او را از حضور خود مرخص کرد و قمرالزمان زمان را به حضور پذیرفت. امارا زمان که معمولاً در مواقع معینی احضار می شدد تعجب کرد چرا او را احضار کردند. شاه به او گفت: «تو را اینجا خواستم تا بگویم تو اینک به سنی رسیده ای که باید خود را برای ازدواج آماده کنی. قبل که انتظار شنیدانی که مکلبی را نداشت، قفقیر شده و عرب بچه را اجنبی نشست و گفت: پادشاه، ها، من هنوز جوانم و آمادگی زنوشویی ندارم. از این گذشته، به طوری که در کتاب ام زنها موجودات مرموز و بیوفاعی هستند که قابل اعتماد و همسری نیستند. بنابراین به من اجازه دهید که در این باره بیشتر بررسی کنم و بعداً به عرضتان برسانم. شاه که از جسارت فرزند ناخشنود بود، و آن را نافرمانی به شما میآورد آورد به روی خود نیاورد و گفت نمیخواهم تو را مجبور سازم ولی این را بدان که تو جانشین من خواهی بود و هر پادشاهی سرانجام باید فرزندی برای جانشینی خویش داشته باشد آن هم برای حکومت بر چنین سرزمین پهناوری شاه قمرالزمان زمان را جز اعضای حیئت عالی مشورتی پادشاهی انتخاب کرد و قرار شد که قمران در هر یک از نشست های شورا جوید و طرز اداره حکومت را از نزدیک بیاموزد. یک سال از این ماجرا گذشت و سلطان دوباره قمر و زمان را نزده خیش فراخاند و به او گفت یک سال گذشت. اینک منتظرم که پاسخ مرا درباره ازدواج خود از بدهی آیا هنوز هم خوشنودی مورد نظر مرا از من دریق می و میخواهی پس از مرگ من تا آخرین پادشاه دودمان من باشی؟ شاهزاده به سردی پاسخ داد پادشاه ها من یک لحظه از اندیشیدن درباره ازدواج قفرت نکردم ولی عاقبت به این نتیجه رسیدم که زن موجود بیوفا غیر قابل اعتماد و نیرنگ باز است و درباره این گروه شکایت بسیاری از بدرفتاری و شرارتهایشان ام و باید به آگاهیتان برسانم که من در تصمیم خود دایر بر زن نگرفتن باقی هستم و اصرار پادشاه تأثیری در من نخواهد داشت این را گفت و تعظیم مختصری کرد و بدون آنکه منتظر پاسخ شاه شود از در خارج شد هر شاهی دیگری غیر از شاه زمان بود تحمل این جسارت را نمی کرد. ولی او باز هم به خود گفت من از جاه ملاتفت و نرمش باید این فلسند سرکش را رام کنم و فعلاً موردی برای اجبار او وجود ندارد شاه زمان نخست وزیر را صدا زد و گفتگوی خود را با غمر زمان و پاسخ بی او را به نخست وزیر اطلاع داد و گفت نمیدانم با این جوان خود پسند چه رفتاری کنم تا او را آماده زناشویی سازم نخستوزیر پاسخ داد صبر و شكیبایی بهترین شیوه در برابر دشواریها بوده است اما در این مورد به خصوص عقیده دارم یک سال دیگر به شاهزاده مهلت دهید و چنانچه باز هم نافرمانی نشان داد آنگاه موضوع را در هیئت مشاورین مصرف فرمایید و بفرمایید این ازدواج تنها جمعه خصوصی برای شاهزاده ندارد بلکه به خاطر بقای و تخت و صلاح ملت است و باید از این دیدگاه به موضوع نگاه شود سلطان نظر نخوز وزیر را پسندید و به اندرون رفت تا در این باره با مادر شاه ساده که بسیار علاقه من به زنگرفتن گرفتن این پسرش بود گفتگو بو کند سلطان گفت من دو بار با قمر و زمان در این باره صحبت کردم و نفذیرفته است و چون از تو هر شنوی بیشتری دارد تو از او بخواه که ازدواج کند زنن به او بگو در صورت ابراز نافرمانی ممکن است پادشاه اقتا می کند که خوشایند تو نباشد و در نتیجه سبب پشیمانی تو از این نافرمانی هم بشود. مادرش آساده که نام او فاطمه بود با فرزندش صحبت کرد و قمر و زمان پاسخی را که به پدر داده بود به او هم داد. فاطمه فهمید که فرصت مناسبی برای اصرار کردن نیست و باید بعدا در شرایط بهتری در این باره با فرزند خود به پردازد. ندت زیادی گذشت و روزی که فاطمه مناسب میدانست دوباره موضوع ازدواج را با قمر و زمان در میان گذاشت و پرسید چرا تو با ازدواج مخالفت نشان می دهی؟ همیگه زنها که بد نیستند در بین آنها افراد خوب و شایسته هم پیدا می شوند که می توانند همسر خوبی برای شوهران خود باشند. تو اتفاقا کتابهایی هایی که فقط درباره زنهای بدندیش و بد کردار حکایت نقل کرده است. چه بسیار بانوانی هستند که با نیروی تدبیر و دانش و پرهیزگاری خود از زیادهرویها و ستمهای پادشاهان جلوگیری کرده و مادران بسیار خوب و با کفایتی برای فرزندان خود بوده اند. بنابراین نباید همه زنها را با یک چوب راند قمر پاسخ داد مادرجان من هم قبول دارم که زنهای پرهیزگار و خوبی هم وجود دارند از جمله خود شما که از هر جهت شایستگی کامل دارید و نمونه هستید حال فرض کنیم من هم ماننده پدرم تصمیم گرفتم ازدواج کنم در این صورت پدرم شاهده خانومی از کشورهای همسایه را برای من در نظر خواهد گرفت و به فرض اینکه این, این شاقده خانم زیباترین دخترها باشد از کجا معلوم که اخلاق و رفتارش به خوبی زیبایی او باشد که کسی میتواند مطمئن باشد که او تند خوب و زود نخواهد بود و یا آنکه دارای رفتاری پسندیده و ملایم؟ و اذا عمیق و پخته باشد ممکن است آدمی باشد با عقاید پیش پا افتاده و سطحی شاید من او نفوانیم با یکدیگر تفاهم مشابهی داشته باشیم آن وقت زندگی با چنین همسری چه لطفی خواهد داشت مادر شاهزاده گفت اینکه گفتی مشکل نیست اگر همسر تو از لحاظ تو شایستگی تو را نداشته باشد به سادگی او را طلاق خواهی داد شاهزاده گفت مادر شما نمیتوانید تصور کنید که طلاق برای شوهرانی که دارای احساسات انسانی و اخلاقی هستند و به اصول پایبند دارند کار بسیار دشواری به شمار می‌آیند و به همین جهت بهتر است که انسان خود را از اول به خطر نیندازد و ازدواج نکند. مادر شاهزاده گفت: فرزندم با این طرز فکری که تو داری تو آخرین پادشاه دودمان خودت خواهی بود. شاهزاده گفت: مادر اولا معلوم نیست که من دیرتر از پدرم خواهم مرد. كما اینکه که میبینم بسیاری از جوانان زودتر از پیران به تود زندگی گفتهاند. اند. سانیان من بهتر میدانم که آخرین پادشاهی دودمان خود باشم تا اینکه بعد از من فرزنی به شاهی رسد که دارای کفایت و شایستگی نباشد. از آن پس فاطمه از هر فرصتی استفاده میکرد تا پسرش را زنگ گرفتن تشفیق کند و نفرت و بدبینی او را نسبت به ازدواج از دهن او خارج سازد. و پسر هم مرتباً از چنگ مادر فرار می کرد. یک سال دیگر هم به همین ترتیب سپری شد و سلطان با تأسف زیاد می که شاهزاده قمر و زمان همچنان به مخالفت خود با ازدواج باقی است. وقتی که شورای عالی سلطنتی با حضور بلند و سران دولت و عمرای ارتش و خود شاهزاده و سلطان تشکیل جلسه داد سلطان به شاهزاده گفت پسرم مقتداست آرزو دارم که تو همسری برگزینی و انتظار داشتم تو با و فروتنی خواست پدر را توجه کنی اینک در حضور همگی خواهش خود را از تو تکرار میکنم و تو با قبول آن نه تنها آرزوی یک پدر را برآورده میسازی، بلکه مسلحت ملتی را هم که بزرگان و سرکردگان آن خواهان آن هستند رعایت میکنی. اکنون در حضور این بلندپایگان مملکت صریحاً پاسخ خود را اعلام کن تا من هم به وظیفه‌ای که به عهده دارم عمل کنم. شاهزاده با حالتی برافروخته و جسارت‌آمیز جواب منفی داد به طوری که سلطان در حضور مقامات بدسته‌ای کشوری و لشکری احساس در آشکارا به او بیحرمتی شده است. از این جهت سخت ناراحت شد و دستور داد شاهزاده را زندانی کنند. نگهبانان هم شاهزاده را در قلعه نظامی قدیمی و متروکه که مدتها کسی به آن رفت آمد نمیکرد زندانی کردند و فقط غلام سیاهی را برای تنها نبودنش نزد او فرستادند اگرچه ساده زندانی بود ولی خوشحال بود که آزادانه میتواند با خواندن کتاب خود را سرگرم کند و به این ترتیب در روحی و رفتار او تغییری حاصل نشد شب اول زندان چند صفحه‌ای از کتاب آسمانی را مطالعه کرد و بعد هم نماز گذارد. انگ... آنگاه لباسهایش را و, و به بستر رفت و چراغ بالای سر خود را هم روشن نگه داشت در این قلعه نظامی متروکه چاهی موجود بود که پریزادی در آن زندگی می کرد و نام او میمون نختر پادشاه پریان بود وقتی میمون از سفر دور خود از کشور چین مراجعت کرد وارد قلعه شد متوجه کردید که کسی در آنجا خوابیده است و قدامی که جلوتر آمد متوجه شد جوان بسیار زیبایی در آنجا خوابیده است که در تمام عمر خود مردی به این زیبایی ندیده است میمون به دقت صورت زیبایی قمر و زمان را از نزدیک وارسی کرد و با خود گفت وقتی با چشمهای بسته چنین زیباست هنگام باز بودن چشمها چقدر زیبا خواهد بود میمون آنچنان زیر تاثیر زیبایی قمر و زمان قرار گرفته بود که چندین بار او را تحسین کرد و بوسه‌هایی از گونه‌ها و پیشانی او گرفت و سپس از داخل قلعه به بیرون پرواز کرد و در میان فضا صدای حرکت بالهایی را شنید چون به آنسو نگاه کرد یکی از جنهایی را دید که نافرمانی خدا را کرده و خداوند هم آنها را لعن کرده بود اما میمون از جمله پریزادهایی بود که زیر فرمان حضرت سلیمان درآمده بودند این جن نامش داناش و پسر شاموراش بود که میمون را میشناخت ولی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت زیرا میدانست که میمون با اعتقای به خداوند است ولی اینک چون در فاصله بسیار نزدیکی با میمون قرار گرفته بود چارهای نداشت جز آنکه یا باید میجنگید و یا باید تسلیم او میشد بنابراین داناش التماس كناند گفت ای میمون پهلوان سوگند یاد که که مرا آزار نخواهی داد من هم در مقابل تو سوگند میخورم که رفتاری دوستانه با تو داشته باشم میمون پاسخ داد ای جن نهاد مگر جز رفتار دوستانه تو میتوانی رفتار دیگری به من نشان دهی؟ من از تو باکی ندارم ولی حالا که از من انتظار محبت داری سوگند یاد میکنم تو را نیازارم اینک ای روح سرگردان بگو ببینم از کجا میایی و امشب چه شرارت هایی کرده ای دانش پاسخ داد ای بانوی گرامی به موقع به من رسیدی خبرهای خوبی دارم من از کشور چین میآیم از جزایر بسیار دور دست آن که دیدنی‌های بسیار دارد و از همه مهمتران است که پادشاه کشور چین نختری دارد که از حیث زیبایی در تمام دنیا بیمانند است و زیبایی او چشم را خیره می سازد. پدر این دختر بر یکی از بزرگترین و نیرومندترین کشورهای روی زمین سلطنت می کند. هیچ کس در عالم قادم نیست که زیبایی این دختر را توصیف کند. پیشانی اون چون آین شفاف و چشمانش سیاه و درخشان، و گیرا و عشق آفرین است بینی او باریخ و خوشتراش و دهانش چون گونچه گل سرخ و دندانهایش دو ردیف مروارید سفید و صدایش دلنشین و شادی بخش است وقتی نگاه میکند و لبخند می زند بیننده را افسون میکند گردنش چون مرمر تراشیده پیکرهای پیکر است پدر این دختر آشقانه او را دوست دارد و برایش هفت قصر باشقو بنا کرده که یکی از دیگری پرشکوهتر، گرانبهاتر و زیباتر است. نخستین قصر از کریستال خالص، دومی از برونز، سومی از فولاد، چهارمی از نقره، پنجمی از طلا، ششمی از ترکیبات برونز و هفتمی از زمرد ساخته شده است و این پدر علاوه بر دلبستگی بسیار به دختر خود، حالت حسادت در برابر سایرین دارد. پادشاه حرم از این قصرها را با گرانبهاترین اشیاء قیمتی و عطیقه و فرش‌های زربفت و شاهکارهای هنری چینی آرایش داده و باغ‌های چون های بهشت در اطراف این قصرها احداث کرده است. نامین امپراتور غیور است. نمایندگانی از کشورهای همسایه برای خواستگاری این دختر به دربارش آمدهاند ولی پادشاه به همه آنها پاسخ منفی داده است. زیرا دخترش به او میگوید که پدر من همه چیز دارم و از کلیه ی نمت ها برخور دارم و همه گونه تشریفات درباری و احترامات سلطنتی درباره امرا میگردد. مانند یک پادشاه از هر گونه احترام و شکوه مندم بنابراین نیازی به شوهر ندارم این دختر تقاضای پدر را برای قبول شوهر رد کرده تا آنجا که گفت اگر بیش از این مرا فشار قرار دهید این خنجر را تا دست در سینی خود فرو خواهم برد پادشافت بسیار خشبین شد و به دربار تمام کشورها نمایاندهی فرستاد و اعلام کرد که دختر او عقل خود را از دست داده و خواستگاری از او دیگر موردی نخواهد داشت ضمن دستور داد که دختر را در یکی از قصرهای هفتگانه زیر نظر قرار دهند و ده تن سال خورده به مراقبت از او بپردازند آنگاه داناش به میمون گفت من مرتبم به دیدار این دختر که شاخار آفرین شست می رویم. او به اندازه زیباست که من با وجود اینکه که کارم شرارت و بدی نسبت به دیگران است کمترین ترین ناراحتی برای این دختر فراهم نمی کنم. از تو می خواهم که حتما به کشور چین پرواز کنی و این ماه روی زیبا را از نزدیک ببینی و تصدیق کنی که دروغ نمی گویم. در این هنگام میمون خنده بلندی سرداد و با لحنتم از میزی گفت من خیال می کردم می خواهی مطلب فوقلادهی برایم تعریف کنی در حال که یا به سرایی کردی. زیرا تا هنوز آن جوان زیبایی را که من ام ندیده ای و اگر او را دیده بودی دیگر این همه از آن دختر تعریف نمی کردی. داناش پاسخ داد تا زمانی که آن جوان را نبینم نمی توانم بگویم کدام یک از آن دو زیباتر از دیگری است. انجام قرار بر این شد که داناش در یک چشبر هم زدن به کشور چین برود، دختر امپراتور را به این قلعه بیاورد و در کنار قمر و زمان که در حال خواب است بگذارد. و در این حالت آن دو را با هم بسنجند تا به نتیجه برسند. داناش هم به چین رفت و بعد از چند لحظه دختر امپراتور را آورد و در کنار شاهصاد قرار داد. واقعا از زیبایی بیمانند بود. آنگاه بین میمون و داناش اختلاف نظر بود و هر کدام به نظریه خود باقی بودند. تا آنکه داناش پیشنهاد کرد بهتران از که شخص سومی بین مداوری کند که بیطرف باشد. و من کاشیاش را... که از جنهای معروف و قدیمیست معرفی می کنم. میمون با این پیشنهاد موافقت کرد. آنگاه داناش پای خود را سه مرتبه محکم بر زمین کوفت و بلافاصله فاصله موجودی گوش پشت و زشت و شاخدار نمایان گردید. داناش داستان را برای او بیان کرد و از او خواست تا بگوید چگونه ممکن است بیطرفانه تشخیص داد کدامیک از این دو جوان زیبا روی از دیگری زیباتر است. کاشیاش زده. مفوض زیبایی آن دو جوان دید و آنها را بسیار تحسین کرد و گفت حقیقتاً هر دو در نهایت زیبایی هستند و به نظر من فقط از روی نوع و میزان واکنشی که ممکن است در هنگام بیداری از خود نسبت به یکدیگر نشان دهند میتوان پی کدامشان زیباترند داناش و میمون هم این فکر را پسندیدند دانش خود را به صورت مگسی درآورد و بعد به مالایمت روی گردن شاهزاده قمر و زمان نشست و نش ملایمی زد که در نتیجه آن شاهزاده بیدار شد و دانش هم دوباره به صورت پریزاد خود را نامرئی کرد و شاهد صحنه بود همین که قمر و زمان اطراف را نگاه کرد و دختر زیبارویی را در کنار خود دید بسیار شگفت زده شد و با خود گفت من دختری به این زیبایی و فریبندگی در عمرم ام. و عشقی نگهانی در دل او شوله گردید و سر خود را روی صورت دختر خم کرد و آشقان چند لحظه شهره خوششید گونه او را با دقت نگاه کرد و بوسهی با آرامی از گونه دختر گرفت و بعد هم به آهستگی لبها و پیشانی او را بوسید. چون داناش دختر را با نیروی افسون خود به خواب عمیقی فرو برده بود او همچنان در خواب بود. قمر و زمان با خود می گفت این فرشته است یا انسان؟ میخواست او را از خواب بیدار کند که ناگهان از این کار خود داری کرد و با خود گفت مبادا این همان دختر مرد نظر پدرم باشد که به من پیشنهاد ازدواج با او را داده بود. پدرم اشتباهش این بود که این دختر به این زیبایی را به من نشان نداده بود و گرنه من حتما خوشنودی آمادگی خود را برای همسری با او ابراز میداشتم و پدرم را هم از خود نمیرن جندم. پدرم خواسته به این کند.» و مرا آزمایش نمایتها بفهمد دیگر مخالف با ازدواج دیستم و مرا از اینکه با او مخالفت کرده امشام سار سازد. بعد شروع به دادن شاهزده خانم کرد ولی کوشش او بی بود. آنگاه عمل و زمان به عنوان یاد بود حلقه انگشتری شاهزده خانم را با نرمی از انگشت او بیرون آورد و در انگشت خود کرد و حلقه انگشتری خود را به جای آن در انگشت دختر کرد و خود را به او کرد و خوابید و با افسون جن و پریزاد به خواب عمیق فرو رفت همین که قمر و زمان به خواب رفت دانش دوباره به صورت مگسی درآمد وران آن خانوم خانم را به سختی گزید به که که بلاواصله بیدار شد و چشمش به قمر و زمان افتاد و زیبایی استثنایی قمر و زمان مایه شگفتی و خوشنودی بسیار او گردید و بی اختیار فریادی از شادی برآورد و گفت پدرم می‌خواست چنین همسری اختیار کنم و من نادان بی از در مخالفت با پدرم در اومدم. من نمی با بزرگان کشور و پدرم بیهوده لجبازی بازی کردم. من این جوان زیبا را با تمام وجود دوست دارم. این جوان نباید در شب اول عروسی من در خواب فرو رود باید او را بیدار کنم. شخصات خانم بازوی غمر زمان را در دست گرفت و با شدت او را تکان داد. اما به خاطر افسون و از خواب سنگین بیدار نمی شد چند این بار این حرکت را تکرار کرد و چون نتیجه‌ای نگرفت به التماس و زاری پرداخت و فریاد کشید آخر چرا بیدار نمیشوی؟ کدام آدم حسود و پستی تو را به این روز انداخته و چشمانت را بسته است چه کسی تو را جادو کرده است تا چه وقت تو در این حالت خواهی بود بعد انگشتان قمر و زمان را گاز گرفت اما گویی پیکر بی‌جان قمر و زمان را گاز می گیرد. بعد مشتاقانه و با تمام نیرویش او را تکان داد در این لحظه انگشتری در انگشت او دید كه عینا مشابه انگشتر خود او بود بعد از دقت بسیار فهمید که آن همان انگشتر خود اوست اما اینکه چگونه این دو حلقه در انگشتان آنها جای داده شده است عقلش به جایی نمیرسید ولی مسلم میدانست که این صحنه نشان میدهند بین آن دو ازدواج واقع شده است شاهزاده خانم که از بیدار کردن جوان زیبا روی نامید شده بود چندین بار دیگر او را داد و چون از بیدار شدن او میوس شد، پشت به او کرد و به خواب فرو رفت. میمون به دانش گفت با آزمایشی که صورت گرفت، معلوم شد این جوان زیباتر از آن دختر زیباست. آنگاه از کاشاش کسی به تشخیص زیباتر بودن یکی از آن دو را نشان داده بود، تشکر کرد و دانش هم شانسات خانم را به محل قبلی خود برگرداند و کاشاش به دنبال کار خود رفت و میمون هم در همان چاه واقع در قلعه متروک ناپدید شد. روز بعد که قمر و زمان از خوابیدار بیدار شد به اطراف نگاه کرد و چون دختر زیبا در کنارش ندید خشمگین گردید و از غلام خود که در پایین در خوابیده بود سراغ او را گرفت غلام هم که از موضوع کاملا بیاطلاع بود از پرسش پرسشهای غمر الزمان دربارهٔ دختری که شب گذشته در کنار قمر و زمان خوابیده بود مبهوط و گیج بود قمر و زمان چندین بار غلام را با مشر و لگت ساخت و سرانجام او را پیچ کرده و در آب بوتور تا بلکه اطلاعاتی درباره آن دختر به آگاهی قمر و زمان برساند بیچاره سوگند میخورد که من تمام شب خواب بودم و در قلعه هم بسته بوده و کسی قادر به داخل شدن نبوده است و میگفت شما برای سر اندوه خاصه حتما خواب دیده‌اید و اینک تصور میکنید که در بیداری این دختر را دیده‌اید غلام که به حالت نیمه‌جان درآمده بود بازاری و التماس گفت مرا آزاد سازی تا حقیقت را بگویم آنگاه به گریه افتاد و به قمر و زمان گفت تمام لباسهایم خیز شده است اجازه فرمایید بروم و لباسهایم را تغییر دهم آن وقت برای برایتان تعریف خواهم کرد ما این تدبیر از چنگ قمر و زمان فرار کرد و به قصر سلطان رفت و به عرض رسانی که قمر و زمان دیوانه شده و سخنانی میگوید که دلالت بر دیوانگی او دارد سلطان از شنیدن این سخنان ناراحت شد و نخوستوزی را اظهار کرد و به او دستور داد تا نزد و زمان برود و با او صحبت کند و ببینم که او از لحاظ سلامت عقل در چه وضعی قرار دارد. نحسوجیر هم فوراً به داخل قلعه رفت و پس از ادای احترامات از قمر الزمان احوالپرسی کرد. عمر الزمان هم متر عادی با او به گفت گو پرداخت. نحسوجیر گفت سلطان نگران شما بودند زیرا غلام سخنانی می گفت که موجب تشویش سلطان شد و مرا سر تا علت بدخواهی شما را با او بدانم. قمروزمون گفت غلام از دادن پاسخ درباره اینکه این که چه بر سر آن دختر زیبا رویی که شب گذشته در کنار من به خواب رفته بود آمده خودداری داری می کند. به جهت من هم او را کودک سرم تا حقیقت را به من بگوید محوظ پرسید کنم دختر را میفرمایید؟ هیچکس هیچ کس نیست به قلعه قدم گذارد زیرا در قلعه درها همه قفل بودند سانیان، اگر کسی بتواند داخل شود، اول قدم روی شکم قلام میگذارد که پشت در برج روی زمین خوابیده بوده است. بنابراین آنچه شما سراغش را میگیرید و و خیال است و حقیقت ندارد. قمر زمان گفت آنچه میگویم واقعیت دارد. من میدانم که شما آن دختر را فرستادید تا مرا شیفت زیبایی خود سازد و او هم با ت خود را بخوااب زد و هرچه کردن بیدار شود بیدار نشد بعد هم خوابم برد و هنگام صبح متوج شدم که رفته است. نخست وزیر گفت ای شاهزاده، نه من و نه سلطان هیچ کدام از این ماجرا خبری نداریم سوگم یاد میکنم که شما در عالم رویا با چنین دختر ماه پیکری رو به شده اید فریاد کشید چرا نمیخواهی حرف مرا قبول کنی؟ خواب کدام است؟ رویا چیست؟ آن وقت خشمگین گردید و ریش بلند نخست وزیر را محکم به دست گرفت و باتکانهای شدید او را به هر طرف میکشانید و با دست دیگر بر سر او مشت میکوبید بیچاره وزیر نزدیک بود در زیر ضربات محکم قمر و زمان از پای در آید در این وقت با التماس از قمر و زمان امان خواست که او را لحظه‌ای رها کند تا مطلبی به او بگوید وقتی قمر و زمان دست از زدن نخستوزیر برداشت نخوستوزی گفت من حاضرم هر چه میل دارید به سلطان بگویم قمر و زمان گفت به سلطان بگو من حاضرم با همان دختری که دیشب نزد من فرستاده بودید ازدواج کنم هرچه زودتر برو و پاسخست